کتاب افسانه های جان روایت سمد بهرنگی و بهروز تبریزی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان، داستان های افسانه به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده یاسمن علی این داستان پدر هفت دختر و پدر هفت پسر زی بود روزی نبود. غیر از خدا هیچکس نبود. دوتا داداش بودند که یکی هفت دو دختر داشت و اون یکی هفت دو پسر. پدر هفت پسر هر وقت داداششو می دید می گفت سلام پدر هفت و دست با چلوفتی؟ پدر هفت دختر خجالت زده می شد و سرشو پایین و می و میرفت. دختر بزرگترش دید باباش خیلی گرفته و ناراحته کم مونده بزنه زیر گریه گفت بابا چی شده؟ پدرش گفت عمود هر وقت منو میبینه میگه پدر هفتا دست با چلوفتی منم نمیتونم جوابشو بدم دختر گفت گسته نخور پدر من فردو به عمومون که برخوردی در جوابش بگو علیک که سلام پدر هفتو بیارزه یه پسر از تو یه دختر از من بیا بفرستیم به سفر ببینیم کدوم یکی بهتر نون در میاره پدر هفت دختر خوشحال شد شامشونو خوردن و خوابیدن فردای اون روز باز دو برادر به هم برخوردن پدر هفت پسر گفت سلام پدر هفتو دست با چلفتی؟ اون یکی سرش رو بلند کرد و گفت علیک که سلام پدر هفت رو بیارزه یه پسر از تو و یه دختر از من بیا بفرستیم به سفر ببینیم کدوم یکی بهتر نون در میاره پدر هفت پسر راضی شد با خودش گفت هر طاری شده دخترا بی دست و پا نمیتونن جلوی پسر را در و نون در بیارن فردا هر کدوم از برادرها به قدر تواناییشون آزوغه سفر به بچه هاشون دادن. دختر و پسر سوار اسب شدن و از شهر بیرون رفتن. رفتن و رفتن تا به یه دو راهی رسیدن. روی سنگی نوشته بود. هر کس از این راه بره برگشت داره و اون یکی راه برگشت نداره. هرکی رفته برنگشته. نگشته. پسرمو گفت. من از راهی که برگشت نداره میرم. دخترمو گفت: نه، من از این راه میرم. تو برو به اون راهی که برگشت داره. پسرمو قبول کرد. قرار گذاشتن درست یه سال بعد تو همین نقطه همدیگه رو ببینن. هر کی زودتر برگشت منتظر اون یکی بشه. اون وقت هر کدوم راه خودشونو پیش بگیرن و برن. دختر رفت و رفت تا به یه شهری رسید. اسبش و فروخت و یه دست لباس مردونه خرید. پوشید و رفت پیش یه آهنگر شاگرد شد. چند روز گذشت. آهنگر یکم دقت کردید. ریخت شاگردش مثل پسرانیست. اما چیزی نگفت. باز چند روزی گذشت. آهنگر دید نه بابا. شاگردش دختره که دختره. وقتی دیگه نتونست جلو خودشو بگیره. اومد و به ننش گفت: دستاش جای دستبنده گردنش جای گردن بنده. انگشتش جای انگشتره. مامان شاگردم به خدا دختره. ننش گفت: پسر این حرفها چیه میزنی؟ برو سر تو بنداز پایین و کارتو بکن. دست از این حرفات بردار. دختر چطوری میتونه آهنگری بکنه؟ پسر حرفش پس نگرفت. گفت که شاگردش دختره. لباس پسر رو رو پوشیده. آخرش ننش گفت حالا تو که دست بردار نمیشی یه راهی به تو یاد میدم که تهوتو یه کار رو در بیاری. وقتی از کار برمیگردی کمی گل سرخ با خودت بیار. شب که میخوایم بخوابیم من یواشکی گلا رو زیر توشک شاگرد میذارم اگه پسر باشه پسرها توپر و سنگیم میشن گلها زیر توشک به زمین میچسبن و اگرم دختر باشه گلا زیاد خراب نمیشن آهنگر قبول کرد آهنگر و ننش یه سگ تازی تو خونه داشتن حرفای ننه و پسر رو شنید و دوید رفت به دختر گفت که حال و قضیه از چه قراره؟ نعنه اوستا حلیم خان براد نقشه چیده؟ دختر به سد گفت حالا به نظر تو من چیکار کنم؟ تازی گفت چارش آسونه شب اونقدر اینور اونور قلط بزن که همی گلها چروب بشن و به زمین بچسبن دختر گفت خوبه شب شد شام خوردن و موقع خوابیدن. ننه اوستا حلیم خان گل سرخا رو پنهانی زیر تشک دختر گذاشت دختر خودشو به اون را زد و رفت و خوابید تا صبح اونقدر از این رو به اون رو شد که یه پر گلم سالم نمود صبح زودتر از همه پا شد رفت دکان و جارو کرد ننه حلیم خان اومد تشک و بلند کردید یه پر گلم سالم نمونده به پسرش گفت، نگفتم، حالا دیگه دست بردار و برو کارتا بکن. این حرفا هیچ خوبیت نداره. باز مدتی گذشت. آهنگر در تمام مدت توی نخ شاگردش بود. میدید که همه عداعتفارش مثل دختراست. بازم نتونست جلوی خودش رو بگیره. مثل دفعه پیش اومد به خونه و به ننش گفت بابا این شاگرد من دختره. ننش عصبانی شد و گفت پسر ول کنین این حرفا رو. پشت سر بچه مردم هفتر نیار. حلیم خان دست بردار نبود. گفت ننه باور کن شاگردم دختره. پشت سرش حرف در نمیارم. آخر سر ننش گفت حالا که مرغ دیه پا راه دیگه جلوی پات میذارم. که و توی کارو در بیاری از اونو بردارو برو به گردش اول به کوه منجوق برو بعدشم به کوه قیلیچ اگه از منجوق خوشش اومد بدون که دختره اگه از قیلیچ و قمه خوشش اومد بدون که پسره سگ تازی باز حرفای پسر و مادر رو شنید و دوید رفت به دختر خبر داد دختر گفت حالا به نظر تو من چیکار کار کنم؟ سگ تازی گفت خیالت راحت خودتو ناراحت نکن به کوه منجوق که رسیدی خودتو به اون را بزن و اصلا دست به منجوقان نزن اما وقتی به کوه قیلیچ و غمه رسیدید خودتو زغزده نشون بده چند تا قیلیچ و بردار بردارو به کمرت ببن نزدیک های کلاق حلیم خان گفت من خسته شدم. دکان رو ببندیم و بریم کمی گردش کنیم. اول رفتم به کوه منجوق. حلیم خان خودش رفت به طرف منجوقا و مشتش پر کرد و به دختر نشون داد. دختر گفت. او ساینا برای دختر برچه ها خوبه بنداز دور. حلیم خان منجوقا رو دور انداخت. بعد رفتم به کوه قیلیچ. دختر مرتب به میگفت و خوشحالی میکرد. لیلیچ و رو یکی یکی برمی و با ذوق و شوق امتحان می کرد. دو ستایی به کمرش بست و گفت من اینجور چیزا رو دوست دارم. بعد به خونه برگشتن. ننی حلیم خان به پسرش گفت و حالا دیگه این فکرای پرت و پلا رو ول کن و به کارت برس. مدتی گذشت. حلیم خان بازم شک کرد که شاگردش دختره هر روز شکش بیشتر می شود. باز نتونست خودداری کنه. اومد پیش ننش همون حرفا رو زد. ننش گفت پسر خودت که امتحان کردی. دیدی دختر نیست. دیگه چی میخوای؟ من راه دیگه ای نشون میدم که دلت برای همیشه قرص بشه. زور به شاگردت بگو هوا بهتره بریم ابتنی کنی. سگ تازی باز رفت به دختر گفت. دختر گفت حالا ببین من باید چیکار کنم سگه تازی گفت چاره این کار آسونه میذاری اول حلیم خان توی آب بره بعد من جت میزنم توی آب و آب و گلالود میکنم. بعد به سر و روی حلیم میپاشم تو فورا لخ شو برو توی آب فورا هم در بیا و لباساتو بپوش. زور که شد حلیم خان گفت امروز هوا خیلی گرمه پاشو بریم آب تنی کنیم دختر چیزی نگفت و پا شدن رفتن توی استخر اول حلیم خان توی آب جست زد پشت سرش تگه تازی جسد توی آب و آب و شروع کرد به هم زدن به سر روی حلیم آب پاشیدن حلیم خان یه دفعه متوجه شد دختر از آب درم اومده و لباساشم پوشیده و منتظره گفت پسر چرا زود در اومدی؟ دختر گفت من زود سردم میشه نمیتونم توی آب زیاد بمونم از که به خونه اومدن ننه حلیم خان پرسید ها پسر چطور شد؟ پسر گفت شنا کردیم اما چیزی دستگیرم نشد ننش گفت من که مرتب به تو میگم فیال بیهوده میکنی حالا دیگه بهتره هوش و حواست و جمع کارت کنی و به کارت برسی مدتی گذشت یه روز تو به زود دختر دکان رو آب و جارو کرد و منتظر حلیم خان بود که یه دفعه یادش اومد سال تموم شده و باید برگرده برگرده پیش پسرم پسرموش سر همون دوراهی و بعد بره پیش پدرش بلند شد دوکان رو بست و روی درش اینطوری نوشت حلیم خان دختر بودم دختر رفتم درست کار بودم درست کار رفتم رفت و رسید به سر دوراهی البته پولاشم با خودش آورده بود پسرمو هنوز برنگشته بود یه روز تموم منتظرش شد روز بعد با خودش گفت برم خبری ازش بگیرم رفت و رفت تا به شهری رسید سراغ پسرموشو گرفت گفتند. با این که میدی، حتماً حتما دنبال همون گدایی می گردی که توی درای فلان همون میخوابه. دختر رفت و پسر اموشو پیدا کرد. دید تا خرخره رفته توی خاکستر. همه چیزش رو فروخته و خرج کرده و گدایی می کنه. دختر رفت برای پسر اموش لباس و اسب خرید و گفت پاشو بریم شهر خودمون. حالا دخترمو و پسر رو اینجا می و میریم به سراغ حلیم خان و ننش حلیم خان اومد دکان بست است و روی درش نوشته حلیم خان دختر بودم دختر رفتم حلیم خان خوشگیش داد. دو دستی توی سریش و اومد به ننش گفت: نه, نه شاگردم دختره حالا هم گذاشته رفته حلیم مقداری جنس خرازی خرید و مثل دوره افتاد دنبال دختر. دختر و پسرم اومدن رسیدن به شهر خودشون. هر کدوم به خونه خودش رفت. دختر پولاشو به پدرش داد و گفت پدر پاشو برا اسب منو از پسرمو بگیر. پدر رفت و گفت دخترم پسرممو پسرمو به منو پس بده. پدر و مادر پسر نگاهی رد و بدل کردن اما چیزی نگفتن. پدر هفت دختر اسبو گرفت و اوورد. فرد دختر گفت پدر پاشو برو لباسای منو از پسرمو بگیر. پدر رفت و گفت دخترم میگه که پسر امو لباسای منو پس بده. پدر و مادر پسر بازم نگاهی رد و بدل کردن و چیزی نگفتن. پسر لباساشو از تنش در آورد و داد به عموش سرشو پایین انداخت. از این طرف حلیم خان اونقدر راه اومد تا به شهر رسید توی کوچه ها میگشت بلند بلند آواز سر میداد جنس میفروخت بلکه دختر صداشو بشنوه دخترم صدای اونو شنید و رفت در درو باز کرد حلیم خانو شناخت اونو به خونه آورد به پدرش معرفیش کرد حلیم خان گفت دختر من به خاطر تو این همه راه اومدم. میخوام که زنم بشی. پدر و دختر هر دوتاشون راضی شدن و عروسی سر گرفت. روز بعدم حلیم خان زنشو برداشت و رفت پیش ننشت.